فصل چهارم. سعی میکنم یادم بیاید. شب تصادف دیر وقت توی میدان پیرامید چه می کردم. باید برایتان توضیح بدم که آن وقتها هر بار از محله های سمت چپ ساحل بیرون میرفتم، احساس خوبی داشتم. انگار کافی بود از روی رود سن رد شوم تا از رخبتم بیرون بیایم. ناگهان برقی در آسمان دیدم. بالاخره داشت اتفاقی برایم میافتاد. شک نکنید که من اهمیت خیلی زیادی به نقشه برداری میدهم. بارها از خودم پرسیدم چرا در فاصله چند سال مکانهای ملاقات با بدرم کم کم از شانزلیزه به پورت اولان کشیده شدند. حتی یادم میاد توی اتاقم در هتل خیابان ووآورت نقشه پاریس را باز کردم. با خودکار قرمز بعضی قسمت ها را زرب در زدم. همه چیز از منطقهی در غرب به مرکزیت اتوال شروع شده و کم کم سمت جنگل بلونی رفته بود. بعد خیابان شانزلیسه. ما به شکل نامحسوسی از مادلن و گران بولوار به محله اوپرا کشیده شده بودیم. باز هم پایینتر سمت پال روائیال به مدت چند ماه زمانی طولانی برای فکر کردن به اینکه پدرم در طول این پیشروی نقطه ثابتی پیدا کرده در کافه روک اونیور به دیدنش می آمدم. به مرزی نزدیک می شدیم که سعی میکردم حدودش را روی نقشه پیدا کنم. از کافه روک رفته بودیم به کافه کرونا که نبش میدان سن ژرمن و خیابان ساحلی لوفر است. بله. به نظرم می رسید جاست. همیشه حدود ساعت نه شب در کرونا قرار میگذاشت. کافه در حال تعطیل شدن بود. ما تنها مشتری در انتهای سالن بودیم. رفته آمد ماشین در خیابان ساحلی زیاد نبود و صدای ساعت سن ژرمن لوکسرووا هر یک رب به یک رب شنیده میشد. اولین بار آنجا بود که متوجه دباس های و دکمه های افتاده پالتو آبی آسمانیش شدم. ولی کفشهایش واکس درست و حسابی خورده بودند. نمیگویم شبیه نوازنده های بیکار بود، نه. بیشتر به ماجراجوهای شباهت داشت که مدتی را در زندان گذراندند. اوضاعش به هم ریخته بود. از شکوه و جنب و جوش جوانیش خبری نبود. ما از سنجرمن منلوکسرووا به پرت اول آن رسیده بودیم. بعد نزدیکی های منروژ و شاتیون برای آخرین بار شاید مف شدن سایش در یک صبح مهالود نوامبر بودم، مهی هنایی مستقیم؟ سمت دو مکانی میرفت که در هر دوشانغلعه ای بود و مردم را صبح زود در آن نقطه تیرباران میکردند. بعد از آن خیلی برایم پیش میامد که راه را برعکس بروم. نزدیکی های ساعت نه شب با رد شدن از پل دزار سن را پشت سر میگذاشتم و ساحل چپ را ترک میکردم و بعد میدیدم در کرونا هستم. اما این بار، ته کافه نشسته بودم و دیگر لازم نبود دنبال حرفی بگردم تا با آن مرد پر رمز و راز با پالتو آبی آسمانی بگویم. کم کم احساس آرامش به من رو آورده بود. از منطقه آن دست رودخانه که در گلولایهایش گیر میافتادم گذشته بودم. پاهایم را روی زمین سفت گذاشته بودم. اینجا چراخها روشندتر بودند. صدای جز جز محتابی را میشنیدم میخواستم در هوای آزاد در امتداد تاغهای هلالی قدم بزنم تا به میدان کنکرد برسم در شبی صاف و خاموش آینده روبهرویم باز میشد در کرونا تنها بودم و هر یک رب صدای زنگ ساعت سن ژرمن را میشنیدم نمی توانستم به جلسات بوویر در هفته های گذشته و شاگرت هایش که کنارشان نشسته بودم فکر نکنم. بله این جلسه ها همچنان توی کافه های اطراف دانفر رو برقرار بودند. غیر از یک شب که کمی پایینتر در خیابان آلزیا برگزار شد. توی کافه ترمیناز، ترمیناس همان جایی که چند بار پدرم را دیده بودم. آن شب فکر کردم او و بویر همدیگر را دیدند، دو دنیای کاملا متفاوت، بویر مردی کم و بیش پرتم که چند مدرک دارد با لغبهایی مثل دکتر و استاد، اما پدرم مردی ماجراجو که تنها مدرسش خیابان بود، هر دو شیاد، اما هر یک به روش خودش، آخرین بار با چند جزوه درسی بین ما پخش کرد پسری که قیافه غرقی داشت گفت این جزوه ها را در یک دانشگاه یا یک آموزشکده یادی که الان اسمشان را فراموش کردم درس می دهد. همگی توی آن کلاس ها شرکت می کردند ولی من واقعا دوست نداشتم روی نیمکت مدرسه مرتب و منظم بنشینم آموزشگاه های شبان روزی و پادگان برایم بس بودند شبی که غرقی جزوه ها را پخش کرد؟ همان موقع که بویر داشت روی نیمکت روکش دارش جا به جا می شد؟ با دستم یواشکی اشاره کردم که نیازی به جزوه ندارم قرقی نگاه سرزنش شامیزی به من انداخت نمی خواستم دلش را بشکنم بس جزوه را گرفتم کمی بعد تصمیم گرفتم آن را در اتاقم مطالعه کنم ولی نتوانستم از صفحه اول جلوتر بروم حس می کردم؟ هنوز صدای بویر را میشنوم صدایش نه مردانه بود و نه زنانه چیز بیروحی در آن صدا وجود داشت سرد و بیروح بود و هیچ تأثیری روی من نمیگذاشت اما آرام خودش را در وجود دیگران جا میداد و به نوعی فلجشان میکرد و آنها را زیر سلطه خودش میکشاند دیروز بعد از اور چینهای صورتش به شکل دقیقی به خاطرم آمدند. درست مثل یک عکس، گونه ها و چشم های کوچک شفافی که زیادی توی هدقه فرو رفته بودند. مثل یک مرده، لبهای های گوشتیش طور عجیبی برگشته بودند، با صدایی سرد و بیروح. یادم میآید آن بخت ها مرده دیگری هم مثل او وجود داشتند. از جمله چند مبلغ برهمایی، چند استاد فلسفه و اعضای فرقه هایی که همسنوسالهای مرا میفرستاد، دنبال یک مکتب سیاسی، یک اصل عقیدتی سخت و انعطاف ناپذیر، یک سکاندار بزرگ تا بتوانند روح و جسمشان را وقفش کنند. یادم نیست چطور توانستم از این خطر جان سالم در ببرم. من هم مثل بقیه آسیب پذیر بودم. واقعا هیچ چیز مرا از تمام شنوندههای های اغوا که دور بویر حلقه می زدند متمایز نمی کرد. من هم نیاز به یقین داشتم. عجب معجزه ای شد که به دام نیفتادم. این را مدیون تنبلی و بیخیالی هستم. شاید هم مدیون روحیه سطحی گری که به جزئیات عینی مشغولم میکرد. بله، این مرد کراوات صورتی داشت. زن بوی گل مریم میداد. خیابان کرنو سراشیب بود. توجه کرده ای که در بعضی خیابانها نزدیک غروب خورشید جلوی چشمانتان است؟ مردم مرا احمق فرض میکردن.